به نام خدا سلام شب شما دوستان همراه به خیر و شاب کنید ای برادر قصه چون پیمانه است معنی اندروی بسان دانه است دانه معنا بگیرد مرد عقل ننگرد پیمان را گرگشت نقل یکی از جلوه های فرهنگ مردم قصه و افسانه است که عمری به اندازه حیات بشر داره قصه ها و افثانه ها که به وسیله نقل به امروز رسیدن همینطور هم به نسل های آینده منتقل میشن قصه ها و افسانه‌ها قدیمیترین میراث فرهنگی بشرن که از طریق اونها میشه بندیشه‌ها، باورها و آداب و رسوم و به طور کلی اطلاعاتی راجع به مردمان سرزمین مختلف به دست آورد و اونها رو سرماش قرار داد. این هفته قصد داریم به دنیای پررمز رمز و راز افسانه‌های سرزمین ترکیه سفر کنیم و افسانهای را از مردمان این سرزمین براتون نقل کنیم به نام افسانه سرفیق. برگرفت از کتاب داستانها و افسانه‌های ترکیه با ترجمه از مرگری کنت و ترجمه فارسی شهیندخت رئیس داده به شوید افسانه سرفیق از سرزمین ترکیه روزی روزگاری در سرزمین ترکیه سه نفر دوست بودند که هر سه دل در گروه عشق تنها دختر پادشاه داشتند اما هیچ کدوم از اونا این راز رو به دیگری نگفته و در دلشون نگه داشته بودند روزی از روزها سه دوست دور هم نشسته بودند و از هر دری سخن میگفتند وقتی صحبت ازدواج به میان اومد اولی گفت ای من باید پول کافی به دست بیارم و اون وقت به خاستگاری دختر مرد علاقم برم دومی با حیجان گفت راستی منم منم میخوام با دست پر به خاستگاری دختر مرد علاقم برم و سومی با کمی شهر گفت شما چه پنهون من, من, من منم تو فکر اینم که یه پول حسابی جمع کنم و در اولین فرصت مناسب به خاستگاری دختر مرد علاقم برم خلاصه سه دوست برای اینکه پولی به دست بیارن و ثروتمند بشن تصمیم گرفتند که هر کدوم به دنبال بخت و اقبال خودشون به طرفی بگردن و در این قرار گذاشتن که بعد از گذشت دو سال دوباره همدیگر رو در همین جا ملاقات کنن هر سه دوست وسایل سفرشون رو مهیا کردند و به راه های خودشون رفتند دو سال گذشت رفیق اولی که در این مدت تونسته بود دویس لیره پول جمع کنه خوشحال و خندون به طرف شهر خودش و جایی که با دوستاش قرار گذاشته بود به راه افتاد در بین را وقتی که داشت از بازار و شهر عبور می کرد صدای مرد تاجری رو شنید که میگفت آینه فروشی دارم آینه چه آینه فقط دویس لیره آینه جوان اینو شنید لحظه ایستاد و کمی بعد با کنجکاوی به طرف مرد تاجر رفت و از اون پرسید آقا چرا این آینه انقدر گرونه؟ مرد تاجر نگاهی به قد و بالای جوان انداخت و آهسته گفت ببین جوان چون این آینه ی آینه معمولی نیست جوان با تعجب نگاهی به مرد تاجر انداخت و جلوتر رفت و آینه رو از دست مرد تاجر گرفت و اونو با دقت زیر رو کرد و گفت من که چیز العاده ای تو این آینه نمی بینم مرد تاجر به تندی آینه رو از دست جوان گرفت و گفت نباید هم ببینی و بعد آهسته گفت این آینه جوان خاصیت جادویی داره جادویی جوون پوستخندی زد و پرسید خاصیت جادویی یعنی چیکار میکنه؟ مرد تاجر با هیجان جواب داد یعنی اینکه هر آرزویی داشته باشی توی آینه ظاهر میشه و برای همینم هم اینقدر گرونه بله پسر جان بله پسر جوون وقتی این حرف رو شنید فوراً به یاد شاهزاده خانم محبوبش افتاد و آینه جادویی رو خرید و به افتاد لا بشنوید از رفیق دومی که اونم در این مدت دو سال 220 لیره پول به دست آورده بود وقتی دو سال تموم شد تصمیم گرفت به جایی که با دوستاش قرار گذاشته بودن برگرده بنابراین براه افتاد جوون دومی همینطوری که داشت توی بازار میچرخید صدایی توجه اونو به خودش جلب کرد صدایی دورگه که میگفت قالی دارم قالی خوش نقش و نگار قالی خوشبافت فقط دویست و بیست لیره قالی دارم پسر توی شلوغی بازار صدا رو دنبال کرد و اینکه به مرد تاجر قالی فروش که هیکلی و سخونی داشت رسید و ازش پرسید امو چرا این قالی اینقدر گلونه؟ و چش دوخت به نقش های زیبای قالی مرد تاجر با همون صدای دورگه جواب داد چراش رو وقتی میگم که واقعا قصد خرید داشته باشی و بعد با دست به سر جوون رو به کناری زد و گفت برو کنار بذار هوا بیاد پسر جوون گفت خریدارم مرد قالی فروش چرا و طرف تو چشمایی پسر جوون خیره شد و گفت خریداری پسر جوون بتونی گفت البته البته مرد غالی فروش به پسر جوان اشاره کرد که نزدیکتر بیاد و بعد توی گوشش آرون گفت این غالی پسر جون یه غالی معمولی نیست فهمیدی پسر جوان گفت یعنی چی این غالی چه فرقی با غالی دیگه داره؟ ها چه فرقی مرد غالی فروش گفت آها الان میگم ببین پسر جون هر وقت کسی روی این قالی بشینه مثل یک پرندهی سبوکوال به پرواز در میاد و تو رو هر جا که خواستی میبره خاصیتش اینه پسر جوون از شنیدن این حرف خوشحال شد و فوراً دویست و بیست لیره رو داد و قالی رو خرید و به راه خودش ادامه بره. و اما رفیق سوم، این جوون هم در مدت دو سالی که کار کرده بود تونسته بود دویست لیره پسانداز کنه اونم تصمیم گرفت به شرخ خودش یعنی جایی که با دوستاش قرار گذاشته بود برگرده جوان سومی همینطور که داشت میرفت به مرد چاق و کوتا رسید که یک لیموی بزرگ رو جلوش گذاشته بود و فریاد میزد آهای لیمو دارم یه لیموی استثنایی بیا بیا لیمو دارم جوون ثومین که تا حال لیموی بون بزرگی ندیده بود با کنجکاوی جلو رفت و گفت اما این لیمو رو چند میدی؟ مرد نگاهی به جوون انداخت و گفت این لیمو یک لیموی استثنائیه خاصیت جادویی داره میبینی که ظاهرش هم با لیموهای دیگه فرق داره جوون گفت خب حالا چند میفرشی؟ مرد بتوندی گفت دویس لیره یه ناقابل پسر جون لیره پسر با شنیدن این حرف با ناباوری پرسید دویس لیره؟ مرد گفت بله دیگه دویس لیره جوان گفت آخه دویس لیره پول زیادیه مرد گفت نه برای خرید این لیموی جادویی این لیمو بیشتر از اینها هم میرزه بعد با صدای آهسته گفت بزر جون هر کسی لیمو رو خواچ کنه و بعد اونو بو کنه تا آخر عمرش با سلامتی و تندرستی زندگی میکنه و تا آخر عمر ناخوشی به سراغش نمیاد که نمیاد جوان سوم که از خاصیت این لیمو خوشش اومده بود فورا دویس لیرهی رو که به دست آورده بود به مرداد و لیمو رو از اون خرید و خوشحال برافتاد. سرانجام وقتی هرسه رفیق در روز معین به محلی که قرار گذاشته بودند رسیدن و با خوشحالی دور هم نشستن رفیق اولی گفت خا، دوستان حالا بگید هر کدوم چی با خودش آورده من که دویست لیره پول داشتم اونم دادم یه آینه جادویی خریدم رفیق دوم گفت منم دویست و بیست لیره پول پسنداز کردم ولی اونو دادم و یه قالی پرنده خریدم رفیق سومی هم با هیجان گفت منم تمام 200 لیری رو که جمع کرده بودم دادم و یه لیموی جادویی خریدم. و بعد هر سه رفیق از ماجرایی که براشون اتفاق افتاده بود صحبت کردن. رفیق دومی و سومی به رفیق اولی گفتن: "خب دوست عزیز، بهتر آینه جادویت رو بیاری تا ببینیم هر کدوم چه چیزی در اون میبینیم و از اونجایی که هر سه رفیق دل در گروه عشق شاهزاده خانم داشتن در دلشون آرزو کردند که محبوبه زیباشون یعنی شاهزاده خانوم رو توی آینه ببینن اونا به محض نگاه کردن به آینه یه دفعه تصویر شاهزاده خانوم زیبا رو دیدن که در بستر بیماری افتاده و مرگش نزدیک و در این موقع هر سر فیق به عشق شاهزاده خانم اعتراف کردن اونا در حالی که سخت نگران حال شاهزاده خانوم بودن روی قالی پرنده نشستن و گفتن، ای قالی پرنده فوراً ما رو به قصر پادشاه ببر و غالی به سرعت مثل یه پرنده سبکبال بال از روی زمین بلند شد و در عرض چند دقیقه سرفی رو به قصر پادشاه سه رفیق وقتی وارد قصر پادشاه شدن دیدن که آینه بونها دروغ نگفته و شاهزاده خانم محبوبشون واقعا بیماره و چیزی به مرگش نمونده دو رفیق به رفیق سوم خودشون گفتن منتظر چی هستی؟ مگه نمیبینی حال شاهزاده خانم خوش نیست؟ رفیق سومی که سخت از بیماری شاهزاده خانم متحصه شده بود با نارتی گفت من باید چیکار کنم؟ دو رفیق دیگه به تندی گفتن معلومه دیگه تو باید از لیموی جادویی که داری استفاده کنی زود باش زود باش لیمو رو ببر تا شهزاد خانم اونو بو کنه و دوباره سلامتیش رو به دست بیاره رفیق سومی به سرعت لیموی جادویی رو از وسط به کرد و اونو جلوی بینی شاهزاده خانم گرفت چند لحظه بیشتر طول نکشید که یه دفعه شاهزاده خانم چشاش رو باز کرد و حالش بهتر شد. و ما به شوید ادامه ماجران سرفیق وقتی دیدن که حال شاهزاده خانم خوب شده و از سلامتی او مطمئن شدن از اونجایی که هر سه دل در گروه اشک شاهزاده خانم داشتن بر سر اینکه که کدوم یکی از اونا باید با شاهزاده خانم ازدواج کنه با هم شروع به مشاجره کرد شاهزاد خانم حاج و واج یه گوشه ای بود و نمیدونست کدوم یکی از این سه نفر رو برای همسری خودش انتخاب کنه. رفیق اولی سینش رو صاف کرد و با صدای رسا گفت اگه, اگه آینه ی سهرامیز من نبود شما چجوری میتونستیم بفهمین که شاهزاده خانم بیماره ها؟ رفیق دومی هم جلو اومد و گفت ولی اگه قالی پرنده من نبود شما چجوری میتونستیم با این سرعت به اینجا بیان و در آخرین لحظه جون شاهزاده خانم رو نجات بدید ها؟ و بالاخره رفیق ثومی هم گفت ولی دوستان من اگر لیموی جادوی من نبود شما هیچ وقت نمیتونستین شاهزاده خانم رو نجات بدین دوباره مشاجری سرفیق بالا گرفت تا هر کدوم ادعا کردن که حق ازدواج با شاهزاده خانم رو دارن خلاصه بعد از مشاجره و بگو مگو سرفیق تصمیم گرفتن برای حل مشکلشون پیش قاضی شهر برن و به سرعت به طرف خونه قاضی شهر برافتاد رفیق پیش قاضی رفتم قاضی که مرد دانا و حکیمی بود نگاهی به قیافه رفیق انداخت و گفت خوب مشکل چیه رفیق اولی به تندی گفت جناب قاضی ما سه نفر دل در گرو عشق شاهزاده خانم داریم من یه آینه جادویی دارم که اون متوجه شدیم شاهزاده خانم بیماره و رفیق دومین کلام رفیقش رو قطع کرده گفت من من با قالی پرندم فورا اونا رو بردم پیش شهزاد خانم بیمار اگه قالی پرنده من نبود جناب غازی ما هیچ وقت نمیتونستیم مثل باد خودمونو به شاهزاده خانم برسونیم و اونو زنده نگه داریم رفیق سومی گفت ولی ولی جناب غازی لیموی جادویی من بود که شاهزاده خانم بیمار رو از مرگ نجات داد و دوباره مشاجره ها بالا گرفت قاضی که حوصلش از مشاجره سرفیق سر رفته بود فریاد زد ساکت سرفیق ساکت شدند قاضی مکسی کرد و گفت شما اومدین تا من مشکلتون رو حل کنم پس این همه بحث و مشاجره برای چیه ها سرفیق که شرمنده شده بودند از خجالت سرشونو رو پایین انداختن خازی رو کرد به رفیق اولی و گفت بسر شما چقدر پول بابت خرید اون آینه جادویی پرداخت کردید؟ رفیق اولی به گفت: گفت دویست لیره چناب خازی؟ خازی از ای که در کنار دستش بود دویست لیره بیرون آورد و به رفیق اولی داد و گفت این دویست لیره تو و بعد رو کرد به رفیق دومیه گفت شما چی؟ چقدر پول بابت خرید قالی پرنده دادیم؟ رفیق دومی گفت دویست و بیست لیره قربان غازی باز هم از کیسهی که در کنار دستش بود دویست و بیست لیره شمرد و به رفیق دومی داد و گفت اینم دویست و بیست لیره ی تمام رفیق اولی و دومی هاج و به هم نگاه کردند. غازی رو کرد به رفیق سوم و گفت وما شما گفتی لیموی جادویی متعلق به تو بود رفیق سومی با خوشحالی گفت بله خوروان بله قاضی مکسی کرد و گفت پسرم شاهزاده خانم متعلق به توه چرا که تو فداکارتر از دو رفیق دیگت هستی چون لیموی جادویی خودت رو بریدی و دیگه نمیتونی مثل اونو به دست بیاری تو بهترین چیزی رو که داشتی فدای شاهزاده خانم کسی که دوستش داشتی کردهی پس شاهزاده خانم حق به توه. دو رفیق دیگه اعتراض کنن در حالی که زیر لب قرولون می خونه غازی رو ترک کردند و رفیق سومی با خوشحالی از غازی تشکر کرد و راه قصر رو در پیش گرفت. اون تصمیم داشت بره و با شاهزاده خانم محبوبش که در انتظارش بود ازدواج کنه. سنیه استرفیغ رو از سرزمین ترکیه براتون نقل کردم امیدوارم با نقل این مجموعه افسانه ها قدمی هرچند کوتاه در راه کسب، ضبط و حفظ گنجینه ارزشمند افسانه ها برداریم و این منبع غنی و پرمایه مورد توجه و استفاده دوستداران ادب و فرهنگ ملل جهان واقع بشه شب بسیار خوبی رو برای شما آرزو کنم. هزار افزان کار است از نویسنده و سردبیر زینت سالح بور ویراستار سید فری نور بخش اجرا مهران دوستی صدا بردار عبالفزل بیرانی. حاگی کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بترود